في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة الحمد لله وبعنايات آغا إمام زبان عليه السلام به بررسی عدله نقلیه وحدت شخصی وجود رسیدیم که دو دسته از آیاتی که برای وحدت شخصی وجود و چه بسا مطلق وحدت وجود به اونها استدلال شده بود مورد بررسی قرار گرفت دسته سومی از آیات وجود داره که به اونها استدلال شده که ما می توانیم از اون دسته به آیات توحید افعالی یاد بکنیم که به بعضی از این آیات انشاء الله اشاره میکنیم فلم تقتلوهم ولکن الله قتله هم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما شما با اونها قتال نکردید شما اونها رو نکشتید بلکه خداوند متعال اونها رو کشت فلم تقتلهم شما اونها رو به قتل نرسوندید ولاکن الله قتلهم خدا اونها رو به قتل رسوند خدا اونها رو کشت و شما تیر نانداختید هنگامی که تیر رو در کمان میکشیدید تیر رو میانداختید در واقع شما نبودید ولاکن الله رما خداوند متعال تیر را انداخت انفال آیه 17 خب به این آیه استدلال شده که وقتی که خداوند متعال میفرماید که شما با اونها جنگیدید و شما اونها را کشتید اما اینطور نبوده بلکه من اونها را کشتم شما که تیر انداختید من تیر انداختم خب این چطور میشود معنا پیدا بکند جز اینکه وجود همان کسی که دارد کسی دیگر را میکشد همان خدا باشد وجودش همان وجود خدا باشد چطور میتواند جز این معنا داشته باشد که آن کسی که دارد تیر را میاندازد که تیر انداختن به خداوند متعال نسبت داده شده است جز این نمیتواند معنا داشته باشد که وجود اون فرد تیر انداز همون وجود خداوند متعال باشد که در واقع همون خداست که دارد تیر می اندازد آیه بعدی در سوره توبه است که خداوند متعال از طرفی میفرماید فرماید خزمن انوالهم صدقتن تو تحرهم و تو بها و سل علیهم ان نسلات سكن لهم والله و آیه 103 سوره توبه که خداوند متعال میفرماید که از آنها ای رسول من صدقه بگیر که اونها رو پاک بکنه اونها رو تزکیه بکنه بعد در آیه بعد آیه 104 میفرماید الا و آیا اونها ندانستند که ان الله هو یقبل التوبه خداوند متعال هست که توبه رو میپذیرد ان عباده و یخذ الصدقات و خداوند متعال هست که صدقه را میگیرد از طرفی به رسول خدا فرموده که شما صدقه رو بگیرد از طرفی میفرماید که خداوند متعال صدقات رو میگیرد خب پس باید بگوییم که وجود رسول خدا و وجود همه صدقه گیرنده ها همون وجود خداست و خداست که دارد در صورت وجود اون این صدقه رو میگیرد در واقع همون خداست که دارد صدقه رو میگیرد. میگیره انتقرض الله قرضا حسنا یضاعفه للکم ما لکم والله شکور حلیم خب آیه 17 سوره تقابن وقتی خداوند متعال میفرماید که قرض حسنه قرض به خداست و قرض گیرنده در واقع خداست خب پس یعنی هر کسی که دارد قرضی را میگیرد همون خداست وجودش همون وجود خداست که معنا پیدا بکند که شما دارید به خداوند متعال قرض میدهید آیه بعدی سوره انسان آیه سی و ما الا الله انیشا الله شما هیچ چیزی رو اراده نمی کنید مگر اینکه خدا اراده کرده باشد. شما چیزی را نمی مگر اینکه خدا اون چیز را بخواهد. بدون اینکه خدا بخواهد، شما نمی چیزی را بخواهید. خب این یعنی که وجود هر کسی که چیزی را از خدا طرف میکنه یا وجود هر کسی که اصلا چیزی میخواهد. وجود اون همون وجود خداست وجود کسی که چیزی را میخواهد وجودش وجود خداست و خداست که در واقع چیزی را میخواهد. که خب همه اینها پس یعنی وجود ما یک وجود در عالم هست و این یعنی وحدت وجود یعنی وحدت شخصی وجود ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین خداوند متعال است که بسیار روزی دهنده هست خب این سوره زاریات آیه پنجاه و هشت وقتی که خداوند متعال هست که بسیار روزی دهنده هست پس یعنی هر روزی دهنده همون خداوند متعال است. وجود هر روزی دهنده به هر نوع رزقی چه رزقهای کوچک چه رزقهای بیشتر و بالاتر وجودش همان وجود خداوند متعال است چون در این آیه شریفه خداوند متعال فرموده بسیار روزی دهنده همان خداست پس همه روزی دهنده ها مایی که گاهی اوقات نانی رو میگینیم برای خانوادهمون میبریم ما همون خداییم، وجود ما همون وجود خداست و در واقع خداست که دارد روزی میدهد. آیه بعدی سوره بقره آیه 165 و لویراللزی نزلمو ازیرون العذابه انالقووتل الله جمیعا اگر ببینند کسانی که ظلم کردن هنگامی که عذاب رو میبینند که همه قدرت ها برای خداوند متعال هست فان الله شدید العذاب به خداوند متعال عذاب بسیار شدیدی داره خب وقتی که خداوند متعال میفرماید همه قدرت ها برای من است خب از این نتیجه میگیریم که هر کسی هر قدرتی دارد ولو مقدار کم وجودش همون وجود خداست چون خداوند متعال فرمود همه قدرت ها مال منه خب این فرد هم یک مقدار قدرت داره چطور می شود با این جمع کرد پس حتما باید بگوییم که همین فرد اصلا وجودش وجود خداست و لذا انتصاب همه قدرت ها به خدا صحیح خواهد بود چون همه ما خدا هستیم و وجود ما وجود خداست لذا معنا خواهد داشت که همه قدرت ها مال خداست آیه بعدی خداوند متعال از طرفی میفرماید و مکرو و مکرالله اونها مکر کردند و خداوند متعال هم مکر کرد و الله خیر الماکرین خداوند متعال بهترین مکر کنندگان است خب خداوند متعال مکر رو به عده نسبت داد به خودش هم نسبت داد آل امران آیه پنجاه و چهار از طرف دیگر میفرماید و وقد مکرن لذین من قبل هم حتی کسانی که قبل از اینها هم بودن مکر ورزیدند فل المکر و جمعه همه مکرها برای خداست سوره رد آیه 42 خب وقتی که از طرف خداوند متعال نسبت می که بله اینها مکر ورزیدند نسبت مکر به اونها داده شده از طرفی میفرماید ملکیت همه مکرها همه مکرها مال خداست خب این فردی که مکر ورزیده پس اگر همه مکرها مال خداست چطور میتواند تواند مکر ورزیده باشد باید حتما اینطور بگوییم که وجود این فرد هم همون وجود خداست و این فرد وجود جدایی از وجود خدا ندارد لذا مکر که این فرد دارد همون مکری است که برای خداست چون وجودش وجود خداست همون خداست لذا صدق می کند که این مکر رو این فرد دارد باز در سوره منافقون آیه شماره هشت خداوند متعال می‌فرماید لله الازت و لرسوله و للمؤمنین عزت برای خداست برای رسولشه و برای مؤمنینه از طرف دیگر میفرماید که در سوره نسا آیه 139 الذین یتخذون من دون اونهایی که کافرین رو ولی خودشون قرار میدند سوای از مؤمنین ایبتغون عندهم العزة آیا دنبال عزت نزد این کافرین میگردند از اونها عزت میخوان بگیرند فئنل عزت لله جميعا همه عزت ها برای خداست خب از طرفی عزت برای مؤمنین و برای رسول خدا بیان شده اما از طرفی میفرماید همه این عزت ها مال خداست ملک خداست و خدا مالک اون عزت هست و همه برای خداست خب وقتی که همه عذت ها برای خداست اما خب بعضی ها هم ضدی دارند و کم خب این را نمی شود توجیه کرد نمی شود بیان کرد مگر اینکه بگوییم همه این کسانی که عضدی دارند نه خدا هستند وجودشون همان وجود خداست وجود سوواایی از وجود خدا ندارند خب وقتی که اینها وجودشون شد وجود خدا سرق می کند که عذت به همه عزت برای خدا باشد آیای دیگری رو هم می در جمله آیات توحید افعالی قرار دهیم که این هایی که با تو بیعت می کنند این یبایعون الله اونها در واقع با خدا بیعت کردهاند یعنی بیعت پذیرنده در واقع خداست خب این رو هم می توانیم از جهت پذیرش بیعت ما جزوه توحید افعالی و با ویات توحید افعالی قرار بدهیم ید الله فوق هم یاد دست خداوند متعال بالای دست های اونهاست خب وقتی که کسانی که با رسول خدا بیعت کردن با خدا بیعت کردهاند خب ظاهر آیه یعنی که اصلا خود رسول خدا همون خداست وجود رسول خدا وجود خداست و رسول خدا وجودی جز وجود خدا ندارد پس در واقع صدق می کند که اینها با خدا بیعت کرده اند و این همون مفاد وحدت وجود و وحدت شخصی وجود خواهد بود ما در نقد این دسته از آیات خب به نکاتی اشاره می کنیم. اولین نکته اینکه که خب این دسته از آیات هم مثل آیات گذشته ظاهرشون هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود و حتی مطلق وحدت وجود نداره خب اینی که بعضی از افعال عالم فعل خداست در این آیات بعضی از افعال بیان شد مثل کشتن مثل رمی مثل پذیرش صدقه مثل رازقیت، بعضی از افعال عالم اینها فعل خداست. اینی که خداوند متعال صدقه رو میپذیرد. اینی که خداوند متعال بیعت رو میپذیرد. خب این ربطی به وحدت وجود نداره. زیرا که ما یک فعل داریم، یک صاحب فعل داریم. و بین فعل و بین صاحب فعل اینها خب جدایی وجود داره. خود فعل که فائل نیست و ما نمی توانیم بگوییم که خود فعل عیناً همون صاحب فعل هست لذا فعل جدای از صاحب فعل هست و بین اینها دعیت هست خب خداوند متعال در این آیات به حسب ظاهر اونم ظاهر ابتدایی و بدوی نه ظاهره با حتی دقت بیشتر به حسب ظاهر ابتدایی و بدوی هم حتی خداوند متعال در این آیات این را دارد بیان می کند که صاحب فعل من هستم نه شما در این جاهایی که خب شما هستید بعد یک فعلی هم صادر می شود این فعل از من صادر شده نه از شما شما خیال کردید که این فعل از شما صادر شده در واقع این فعل از من خدا ساده شده مثلا در خود اینکه شما کسی را میکشید در واقع شما فقط چاغو رو در شکم این فرد فرو کردید اگر من نبودم که این فرد رو بکشم خب در اینجا این فرد زنده میموند فعل قتل از شما رخ نداده از شما صورت نگرفته شما چاقو رو در شکم این کردی اما حالا کی این رو کشت؟ من بودم که این رو کشتم فعل کشتن از شما صورت نگرفته اگر من نبودم هرچه هم مثلا شما چاقو میزدید این فرزنده میموند صاحب این فعل من هستم خب این چه به وحدت وجود داره؟ در رحمیه در تیر انداختن خب شما این کمان را میکشید و تیر را در کمان قرار میدهید خب درست اما تیرانداختن تیر به کس دیگر برخورد کردن اصلا تیر فاصله ای رو طی کردن خداوند متعال میفرماید منم که تیر رو از این مکان به اون مکان میبرم تیر رو من هستم که می اندازم مثلا اگر من نبودم شما کمان رو می میکشیدید تیر رو هم در چله کمان قرار میدادید اما تیر ولو یک ثانیه و به ثانیه هم دقیه مسافت نمی کرد همونجا می افتاد صدق تیر انداختن نمی شود. اینه که این فعل تیرانداختن صورت گرفته تیر پرتاب شده این من بودم که این رو پرتابش کردم این فعل فعل من بود خب این چه ربطی داره که من خود تیر انداز هستم هیچ ربطی نداره در بیعت گرفتن خب قبل از اینکه، دست بیعت کننده به تو برسه وقتی کسی میخواد بیعت کنه دستش رو دراز میکنه. قبل از این که دست بیعت کننده به تو برسه من دست این بیعت کننده رو میگیرم. بعد من دستش رو به تو میرسانم. پس قبل از این که اصلا با تو بیعت کرده باشد با من خدا بیعت کرده. من دست اون رو گرفتم. في پذیرنده بیعت من بودم و اگر من نبودم دست بیعت کننده به تو نمیرسید. ازا تو هم نمی توانستی پذیرای بیعت باشی این فعل من بود خب این چه رفتی داره که وجود نازنین رسول خدا همون خداست هر بیعت گیرنده همون خداست در پذیرش صدقه همینطور در پذیرش صدقه اینی که دارد صدقه ای را میدهد، من اول این صدقه را میگیرم، بعد این صدقه رو به صدقه گیرنده می رسادم خب فعل پذیرش صدقه اول از من صادر شده من این را پذیرا شدم اگر من این را نمی گرفتم من پذیرا نمی شدم و بعد در دست اون شخص نیازمند یا در دست توی رسول خدا قرار نمی دادم خب اصلا پذیرش صدقه از تو ممکن نبود نمی شد صدقه به تو برسد لذا من هستم که دست اون رو گرفتم این فعل از من صادر شده خب این چه رفتی به این داره که هر صدقه گیرنده وجودش همون وجود خداوند متعال هست در ما تشاؤون الا ان يشاء الله که دیگه خیلی واضحتره. بله شما نمیخواهید مگر اینکه من بخواهم مخلوقات چنان تحت سیطره من هستند چنان تحت تأثیر من هستند چنان تحت اختیار من هستم تا من نخواهم اونها نمیتوانند چیزی را بخواهند اول من میخواهم این اذن از جانب من صورت میگیرد بعد اونها میتوانند بخواهند در این آیه خواستن مخلوقات متوقف شده از بر خدا خب این چه رفتی دارد که مخلوقات همون خدا باشد کراراً ما می توانیم مثال بزنیم که کسی که اول چیزی را می خواهد اول می بیند که فلان کس هم می خواهد اگر دید اون خاص خب این هم طلب می کند این رو خب این هیچ رفتی به وحدت وجود نداره در خود رازقیت هم همینطور خود رازقیت اصلا به این نحوه و با این فرض معنا پیدا میکند که رزق از شخص رازق صادر شود برسد به شخص دیگر اگر رزق از این فرد خارج نشود در خود همون فرد بماند خب اینکه اصلا رازقیت صدق نمی کند اگر من یک نانی رو گرفتم این نان رو در دست خودم نگه دارم یا نهایتش در در دامن خودم و در جلوی خودم این رو قرار بدم به شما ندهم که صدق نمی کند که من رازق شما هستم لذا اینی که رزق را از یک شخص میگیرم از کسانی که بالاخره در این دنیا اینها قضای مردم رو تعمیم میکنند چیزهای دیگر رو تعمیم میکنند من هستم که رزق را از اون میگیرم و به شخص دیگر میرسانم خب اگر من این کار را نمیکردم این رزق اصلا به اون شخص نمی رسید از خود این فرد تجاوز نمیکرد رزق رازقیت هم صدق نمیکرد خب پس اینی که من رازق هستم به این معنا میتواند باشد چه ربطی دارد به اینکه وجود همون فرد رازق وجودش وجود خداست ضافم بر این که اصلاً در این آیه خداوند متعال دارد بسیار رز رازق بودن رو، رزاقیت رو به خودش نسبت میدهد. نه مطلق رزق دادن رو بله می توانیم بگوییم که ممکن است کسان دیگر رازق باشند اما رزاق اون کسی که بسیار رزق دهنده است فقط خداست خب یک کسی ممکن است که یک دفعه دو دفعه رزق دهد به نحوی رزق دهد که صدق بسیار رزق دهنده نکند اما به کسی دیگری صدق بسیار رزق دهنده می کند این آیا معنی که این فرد همون فرد است؟ نه هیچ ربطی ندارد در اینکه لله همه قوت ها برای خداوند متعال است خب خداوند متعال می که همه قوت ها و همه قدرت ها مال من است همه قوت ها ملک من است اگر هم کسی را می بینید که در دستش قدرتی هست اگر کسی را می بینید که اعمال قدرتی میکند اینطور نیست که اون مالک این قدرت باشد بلکه مالک قدرت منم من آریه به اون این قدرت را دادم که حقیقتاً هم همینطور است که لذا گاهی اوقات خداوند متعال این قدرت رو پس میگیرد اینی که همه قدرت ها ملک من است خب این چه رفتی به این دارد که اون کسی که حالا دارد قدرت را اعمال می کند همون خدا باشد وجودش وجود خدا باشد مثل اینکه من یک وسیله ای رو یک قلمی رو به کسی میدهم اون با این قلم می نویسد آیا یعنی که اون فردی که قلم را از من گرفته همین من است من بگویم این قلم من است یعنی اون فرد هم وجودش وجود من است هیچ ربطی ندارد در اینکه همه مکرها برای من خداس هم به شرح ایزان اینی که کسی را میبینید که دارد اعمال مکر می کند مکرو اعمال مکر کرده است اینکه کسی را میبینید که دارد اعمال مکر می کند اینطور نیست که مکر مال خودش باشه بلکه این مکر مال من است ملک من است من به اون آغاریه این را داده‌ام خب این چرابطی دارد که وجود همه مکر کننده ها وجود خدا باشد اینکه همه عزت ها برای خدا هست خب یعنی همه ازت ها ملک من است همه ازت ها مال من است اینکه کسی ازتی دارد مؤمنین ازتی دارند شما برای مؤمنین ازتی را میبینید برای رسول خدا ازتی را میبینید اینی که خداوند متعال نسبت داده که لله الازت و لرسولهی و للمؤمنین خب این در اختیار گذاشتن عزت از جانب من است به اونها برای یک زمان معینی رضا همه عزت ها حقیقتا ملک من است ملک در بست من است مال من است حالا اینی هم که رسول خدا عزتی دارد لرسولهی یعنی برای رسول خدا عزتی هست به حسب این برهی زمانی بله خدا این عزت تو, تو داده دست اون باشد لذا داشتن صدق میکند اما حقیقتا ملک من است و این سبب نمیشود که ما بگوییم که همه عزت ها مال خدا هست یعنی که وجود هر صاحب عزتی وجود خدا هست لذا خب به حسب ظاهر اینها هیچ ربطی به وحدت وجود ندارند هیچ ربطی به وحدت شخصی ندارند مظاهرشون منافی وحدت وجود هست نکته دومی که ما در نقد به اون اشاره می کنیم اینه که وقتی کسی یک مدادی رو در دست گرفته و با اون مداد می نویسه در اینجا اتفاقا ما اون که و آن چیزی که حقیقت هست این است که می گوییم که خود صاحب مداد دارد می نویسد اون شخصی که مداد را در دست گرفته اون صاحب مداد است که دارد می نویسد. و اگر بگوییم که مداد می نویسد در اینجا فلواقع استعمال مجازی کردیم چون مداد که اختیار ندارد، مداد که خودش تصمیم نمیگیرد. لذا در اینجا اگر بخواهیم استعمال حقیقی بکنیم باید بگوییم که خود این فرد است که دارد می نویسد خب این در اموری است که، یک وسیله و یک سببی خب این هیچ اختیاری نداره اما در جاهایی هم که حتی اسباب مختلفی در طول هم دیگر قرار دارند اینا هر کدومشون سبب هستند برای ضعیف اما در طول هم قرار دارند یک علت الی وجود دارد یک سبب اقوا و عشدی وجود دارد خب در اینجا ما اگر این فعل رو به همه این اسباب ما نسبت بدهیم خب در اینجا نسبت حقیقی داده ایم نسبت مجازی ندادهیم اما باز در این حالت اگر ما بخواهیم و اگر ما این نسبت رو نسبت فعل رو به اون سبب اقوا و به اون سبب اشد بدهیم در اینجا کار بهتری رو انجام دادهیم و در اینجا اولویت بر این است که ما نسبت رو اتفاقا به اون سبب اقوا بدهیم و به اون سبب اشد بدهیم اگر یک حاکمی یک اربابی به اون غلام خودش به عبد خودش بگه که از اون خزانه من نقداری پول بردار و این رو به عنوان قرض ببر بده به فلانی خب در اینجا ممکنه بعضی‌ها بگویند که عبد پول را قرض داد به فلانی اما در واقع اونی که صحیح هست و اونی که انتصاب بیشتری دارد به این فعل اونی که اولویت بیشتری دارد به نسبت پیدا کردن به این فعل همون حاکم است همون ارباب است این در واقع سبب اشد و سبب اقوا هست. بنابراین در مورد افعال این عالم خوب در یک سری از امور که افعال غیر اختیاری این عالم هست، و افقار غیر اختیاری انسان هست و چه بسیاری از امور طبیعی که چه بسا ما بگوییم اینها اینگونه است که اصلا در این جاها اگر ما بخواهیم نسبت رو به خود اینها بدهیم و به خدا ندهیم در واقع کار غلطی انجام داده ایم و نسبت مجازی در اینجا داده ایم انقدر ما عادت کرده ایم که مداد را ببینیم و صاحب مداد را نبینیم که ما دیگر نمی فهمیم که در انتصاب فعل به این مداد در انتصاب فعل به این alat هایی که اینها تایر اختیاری دارن این کار رو انجام میدن تحت سیطره تام یکس دیگر از عینا دارن انجام میدن ما نسبتی که از فعل به این آلت ها دارین میدهیم نمیفهمیم که این نسبت نسبت حقیقی نیست و نسبت حقیقی این است که ما به صاحب مداد به خداوند عالم این نسبت را بدهیم و در سایر امور هم انقدر ربوبیت خداوند متعال تام و است در این عالم انقدر اراده خداوند متعال در این عالم تام و تمام است و تدبیر خداوند متعال چنان این عالم را فرا گرفته به نهوی که در هر تدبیری خداوند متعال تدبیر میکند اگر کسی حتی تدبیر در عسیان هم بکند بناش رو بر این بذارد که خداوند متعال را اسیان بکنه اینطور نیست که خداوند متعال بیکار بنشیند اینطور نیست که خداوند متعال بگذارد ضرری به عالم توحید به خود خداوند متعال به مؤمنین وارد شود بلکه خداوند متعال تدبیر در تدبیر می کند و تدبیر اون فرد رو مصادره کند و اون رو به سمت خیر این عالم به سمت خیر مؤمنین این رو خداوند متعال جهت میدهد انقدر ربوبیت خداوند متعال در این دنیا تام و تمام است انقدر اراده خداوند متعال در این عالم جریان دارد و انقدر خداوند متعال این عالم رو تحت قدرت خودش قرار داده بلکه همه قدرت هایی که به این عالم عنایت شده از جانب خداوند متعال است اگر خداوند متعال این قدرت رو به افراد نمیداد، به مخلوقاتش نمیداد، اونها هیچ کاری رو نمی انجام بدهند انقدر این جنبه اعطای قدرت از جانب خداوند متعال قوی هست انقدر این جنبه شدید هست و انقدر سببیت خداوند متعال اشهد هست و این ظهور دارد که در واقع اگر هم ما بخواهیم افعال رو در این عالم نسبت به کسی بدهیم به اون علت العلل به اون سبب اقوا که خداوند متعال هست این اولویت بیشتری دارد انتصاب این فعل و این عمل به خداوند متعال تا به مخلوقات لذا صحیح هست که ما بگوییم خداوند متعال رزاق است خداوند متعال تیر را انداخته است خداوند متعال اونها را کشته است و این انتصاب انتصاب مجازی نخواهد بود و بلکه اولویت بیشتری دارد بنابراین حتی ما با دقت بیشتری در این آیات ما نظر بکنیم میبینیم که انتصاب حقیقی صورت گرفته و اخذ به ظهور این آیات بلکه اولویت بیشتری دارد و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و هیچ ربطی هم به وحدت شخصی ندارد. و نکته سوم هم که من سری اشاره بکنم این است که مثل آیات گذشته اتفاقا در این آیاتی که خداوند نوکتانی فرمود و ما رمیت از رمایت بل تختول و هم بلاک نحقق بقد نکرد لزی قبلیم خداوند متعال دارد کسان دیگر رو ثابت می کند مخلوقات رو ثابت می کند از طرفی هم خودش را ثابت می کند. احکامی رو به اونها نسبت میدهد در مقابل اونها احکامی رو به خودش نسبت میدهد. اتفاقا همه اینها و ظهور این آیات دارد فریاد میزرد که بین خدا و مخلوقاتش، جدایی هست و وجود اونها وجود خدا نیست و اینها یکی نیستن بلکه حقیقی است و اگر بخواهیم ما از اینها برداشت زهدت بکنیم کار مجازی و با تعویل اون هم تعویل بسیار بعیدهی که باید همه چیز رو و همه ظاهر آیه, آیه رو کلا زیر بها بگذاریم چه بسا بشه همچین کرد. لذا ظاهر این آیه نافیه وحدت شخصی وجود و وحدت وجود هست و وحدت وجود حتی با تعبیلات بسیار بعیده و دور از ذهن هم به این آیات قابل حمل نیست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.